چرا بعضی یک کتاب فضل آمارات قبول ندارند؟ میگن آحادیس فضل آمارات ضعیف هستند. در صورتی که آحادیس فضل آمارات از رسول الله میباشند. توضیح. هر کسی دیگه برای خودی بعد اظهار وجودی بکنه. من هم هستم داخل دنیا. اینها که در هر گفته حضرت سعدی رحمه الله نداره هر سخن بحث کردن رواست خطا از بزرگان گرفتن خطا این کلام سریع، این کلام گاهر حسین هر کسی برای خودش اظهار وجود میکنه اما در اظهار وجود است نمیدونه من دارم اشتباه میرم اول بگم نویسنده کتاب کی است نویسنده کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاد بهلوی هست. رحمه الله اگر نمیدونید حالا بدونید شیخ الحدیث مولانا دهلیز شیخ زکریا رحمه الله شخصیتی هست که شرحی بر بخاری نوشته که بالای بسته یک جلد است کنتر متواری اما فی صحیح بخاری کتابش بر خونه دارن بیا نگاه بکنی بی اینکه اعتراض میکنه میتونه همه کتاب فقط مطالعه بکنه فا مطالعه بکنه اعتراض جا خودش بذاره ام عادن کتاب جا خودش فقط برای مطالعهش بکنه و اگر این کتاب فهمید کسی داره بر صحیح شرحی می نویسن که بیست یک جيل شرح کتابشه و معارف و داره بر هدیس کلام میکنه نظر بی صاحب نظر هست این آنی کتاب نوشته کتابی دیگر نوشته نام آجازل مسالک الله مقتا امام مالک این کتاب من دارم یه خونه بهتون نشان بدم اگر فهمیدی شما فاگر با خیلی ریز نوشته خیلی ریز خیلی ریز نوشته در هشت جر ریز آمده اگر تایف بکنن حدی اقل بالای سی جر چاید بره این کتاب و الان تعلیق چاپ کردن تعلیقات بشتدن جهان عرب دارن چاپ میکنن نه شماها جهان عرب دارن چاپش میکنن دو تا کتاب بزرگه الان کتاب های دیگه دی هم داره شخصیتی که داره کتابی رو می نویست 20 جل بر صحیح بخاری می نویسه و بالای 30 جل بر معتق مالک می مینویسی ایتری شخصی رسید راحت راحت صحبت که اوقاتو داری اشتباه میکنی فضل عمل تو اشتباهی اگر خودش بر حدیث اونجا تعلیق نمیذار محل بحث بوده اما خوشوختانه خود حضرت شیخ الحدیث هر حدیثی که نوشتن در پایان هر حدیثی اونجا نوشته این حدیث از بخاری هست از مسلم هست، از ترمذی هست. از فلان کتاب هست و در پایان حدیثم هم اگر ضعیف بوده حدیث ضعیف هست حدیث قوی هست تمام اینها رو یادداشت کرده پس جای تحقیق برای شما نگذاشته که بیدی انجا برای خود اظهار نظر بکنی اظهار نظر هم نمیخواد چون خودش گذاشته اگر خودش این تعلیقات و آخرش نمی نوشت برای خیلی از علماء بیرون کردن حدیث از کجا آورده کار بسیار بود تو خیلی از احادیث و های دیگر حدیث آورده که تخریج آن حدیث برای خیلی‌ها کار مشکلیه از الا بر تبراری باز بکنه فلان کتاب باز بکنه چه این شخصیتی با این علم جایگاه علمی رو زیر سوال میرن حالا مسئله بعدی قاعده داخلی خود فضل‌العلما حدیث ضعیف هست، بله حدیث ضعیف هست منکرش کسی نیست حدیث ضعیف است اما حدیث ضعیف را جایگاه حدیث ضعیف چی هست ما دو نوزوف در حدیث داریم یک نوزوف این است که بنابر جعل کردن راوی راوی جعل میکن حدیث را اگر در سنت چنین راوی بود این زوف بره ضعیف است و قوی نمیشه قابل است. استناد نیست اما یک نوزوف داریم که این زوف برداشته میشه چند نفر روایت کن برداشته میشه و جالب اینه که تمام محدثین، مانند امام بخاری معاند امام مسلم میگویند که حدیث ضعیف در باب فضائل این فضیرفته است در فضائل آمال میش حدیث ضعیف را خواند و استفاده کرد دلیلش هست؟ دلیلش اینه بری کتاب ادب المفرد امام بخاری نگاه بکنید امام بخاری در مورد فضائل آداب احکم کتاب به نام ادب المفرد نوشتهاند و از احادیث خیلی زیاد ضعیف استناد کرده اند بری کتاب سنن ترمیزی رو نگاهی کنید کتاب سنن ترمیزی کتابی است که های صحیحه هست که خود امام ترمیزی میفرماید که من کان اندو هاذل کتاب فتعنم عنده نبی يتکلم هر در پیشوی کتاب واشو یک در نزد پیغمبر نشسته صحبت میکنه کتاب س... کتاب خیلی از حدیث ضعیف داره در بافضا تخریش کرده در نزد محدثین اصحاب کتاب های مانند امام بخاری امام ترمیزی اینها ها بی فرما حدیث در باب فضائل قبول هست میش از او استفاده کرد او را خان این فضائل آمال نام فضائل آماله این جمع اغیره استنباد میشه این جمع داخل این کتاب چیز دیگه استنباد میشه چرا این همه حساسیت درشان بدن و مردم را از دین دور بکنن فقط این نوع بخاطر دور کرده مردم از جماعت تبلیغ هستن اما این حرکتی هست عظیم این حرکتی است الهی حرکتی است انبیا مال حرکت انبیا هست که هر کسی که باشه باسه با او در افتاد بر افتاد بر می افتاد این قل موتو به غیظه خب الله میگه مخالفت نکنی با اینها اینها مخلصین اینها اولی الله هستند چیکار میکنند شما چه میخوان مال میخوان چندی میکنن خون های شما میآیند مال شخصی خودشو میگیره در راه الله رب العالمین میره در مسجد الله میخاوه و الله تعریف میکنه. کاری غیر این نیست نبی فکری کار داره نبی مذهبی کار داره نبی عقیدی کار داره فقط کارش این است که مال الله رو گرفته جان خودشو گرفته در الله میره در خانه الله میره الله تعریف میکنه. فضل احوالن چیزی غیر از نداره اگر جای حدیثی بواه در با فضائل این نظر بری من بخاری ملامت بیکورید خیلی جا خود محمد بخاری در میکنه. اینها اینا نیستن اگر اینجوری هست همون معترضی دارین اعتراض رو بکنه تاسته لطف بکنه زبان اعتراض را یک بیتر دیگه باز بکنه بر آلبانی انتقاد بکنه بیگه کتاب آلبانی نکولید چون همین شیخی که کسی داره انتقاد بکن بر این کتاب فیره همین شیخ که تقریباً سی جلد کتاب تناقضات داره نزدیک به هزار اشتوا کرده حالا هزار اشتوا زیگتاش را پیدا بکن اونها دارن این کار میکنن، میک اینجا حدیث صحیح است، در کتاب دیگر میگه حدیث ضعیف است. پس لوح کنی، بیگ علیک تابهار نخوری، تو این کتابا پر از انتناگوزان، خود همین کتابا پر از تناگوزان، جای میگه صحیح، است. جای میگه ضعیفه جای میگه صحیح است. همون حدیث، با همون سند جای دیگه ضعیف میشه یعنی میتو چی؟ میتوانی بدن برای مردم؟ کتابی که هزاران نفر، ها نفر به خاطر همین کتاب برای نماز می‌خونن. میلیون‌ها نفر دارن به خاطر همین کتاب تحجج می‌خونن. ها نفر از اینها اصلاح شده‌اند. چرا این همین حساسیت روی کتاب، روی حرکت اول روی کتاب بگی، بعد حرکت اول میگن که آقای حرکت کتاب جو تبلیغی اینا انگلیسی‌اند. این تاریخ انگلستان بود آورد تجربه جهاد بگیری اول اینجوری گفتن. به نگاه بتونید اول همین چیزو گفتن. گفته این حرکت جماعت تبلیغی اینها طرح انگلیسی است انگلیسی در ایندستان بوده این تارو آوردن تجربه گرفته بشه. بیشه گفته کتاب بعد میگه اولاما خیلی کتابها رو نوشتن در رد بر شیخ خودش اینجوری گفته اینجوری گفته اینجوری گفته در حالی که روحشان با خبر نبود مقبولیت آن در دنیا لبیش داده این حساسیت را بذاری اینکه خوردهگیری بر اولاما نکنید که بسیار خطرناک است. الله فرمایان که من عاد و ولیان فقط تو بالحرب داخل صحیح بخاری میان هر کسی با اولیاء من دشمنی بکنه من خدا با او طرفم من اعلام جنگ با او دارم صحیح بخاری باز کنی اگر کتاب قبولداری قبولداری داخل صحیح بخاری اومده همش از اولیاء الله صینه